اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا به نام خداونده بخشنده بخشایشگر قسم به شب در آن هنگام که جهان را بپوشاند و اذا تجلا و قسم به روز هنگامی که تجلی کند وما خقذك روول اونسا و قسم به آن کس که جنس مزکر و مؤنث را آفرید این سكم نش که سعی و تلاش شما مختلف است ف من عقااتق اما آنکس که در راه خدا انفاق کند و پرهیزگاری پیشگیرد گیرد و صدق و جزای نیک را تصدیق کند ما او را در مسیر آسانی قرار می دهیم اما کسی که بخل ورزد و بینیازی طلبد و, بالحسنى و پاداش نیک را انکار کند للعسرا بزودی او را در مسیر دشواری قرار می دهیم و ما یغنی عنه ماله اذا ترده و دران هنگام که در جهنم سقوط می کند اموالش به حال او سودی نخواهد داشت ان علينا به یقین هدايت كردن بر ماست و ان لنا للآخرة والأولى و آخرت و دنیا عزان ماست فانذرتكم نارا تلظا و من شما را از آتشی که زبان میجوشد بیم می دهم لا يصلها إلا کسی جز بدبخت ترین مردم وارد آن نمی شود كذب همان کس که آیات خدا را تکذیب کرد و به آن پشت نمود و, و به زودی با تقواترین مردم از آن دور داشته می شود همون کس که مال خود را در راه خدا میبخشد تا پاک شود و مال احد عنده من نعمت تجزا و هیچ کس را نزد او حق نعمتی نیست تا بخواهد او را جزا دهد اینتی اوجهی را بین بلکه تنها هدفش جلب رضای پروردگار بزرگ اوست وسه اون فقا و به زودی راضی و خشنود می شود.